به نام خدای یگانی مهربان سلام این بار هم با توش و بخچگه پر رمز و راز زیبای ایران زمین میهمان دلهای گرمتون هستیم و افثانه رو از مردمان خطه خراسان به شما دوستداران فرهنگ و ادب ایرانی تقدیم میکنیم افثانه به نام دختر نارنج طلا برگرفت از کتاب سمندر چلگیس به گردآوری محسن نیهندوست امیدواریم که این افسانه زیبا مورد توجه شما قرار بگیره در روزگاران قدیم در دیار بلخ پادشاهی بود که یه دختر داشت. جوانهای های زیادی آرزوی همسری با این دختر رو داشتن و به خواستگاری اون رفته بودن اما هیچ کدوم موفق نشدن خاسته یه دختر پادشاه رو برآورده کنن حالا خواسته شاهزاده خانم چی بود؟ الان براتون میگه شاهزاده خانم به هر کسی که به خواستگاریش میرفت میگفت اگه دختر نارنج تلا رو برام بیاری همسرت میشم و یعنی از همون راهی که اومدی برگرد حالا دختر نارنج تلا کجا بود؟ براتون الان میگه دختر نارنج تو شهر دیوها بود و کسی نمیتونست به اون دسترسی پیدا کنه اما جوان افثالی ما که اسمش فرج بود و آرزو داشت هر جوری شده با شاهزاده خانوم ازدواج کنه روزی به دربار بلخ رفت و گفت من حاضرم برم و دختر نارنج تلا رو از شهر دیوها بیارم هیچ کدوم از درباریان حرف فرج رو جدی نگرفتن اما در این میان شهزاد به دلش براد شده بود که این جوان یعنی فرج افسانی ما از اهده این کار برمیاد بنابراین برای اون آرزوی موفقیت کرد و فرج روانه شهر دیوها شد رفت و رفت و رفت تا به شهر دیوها رسید و بعد از جستجو بالاخره قصری رو که دختر نارنجترها در اون بود پیدا کرد فرج یه نگاهی به اطراف انداخت و دید که سر تمام خاستگارانی که به قصر بودند بر سر نیزه هاست در این موقع اولین دیو به سراغ فرج اومد و با اون وارد جنگ شد فرج با همه توان و قدرتی که داشت با اون به نبرد پرداخت و سرانجام اونو از پا درآورد نوبت به دیو دومی رسید فرج اونو هم شکست داد و نوبت به دیو سوم و چهارم و غیره رسید خلاصه هر دیوی که میومد فرج اونو از پا در آورد و دیگه اثری از دیوها نبود فرج بلافاصل از قصر گذشت و به باقی رسید در گوشه این باغ تختی از طلا و جواهر قرار داشت که نارنج تلا روی آن برق میزد فرج با خوشحالی نارنج تلا رو برداشت و به طرف شهر بلخ به افتاد شهر به شاه رسید که جوون افسانی ما یعنی فرج موفق شده نارنج تلا رو برای شازد خانم بیاره در شهر شور و شادی و پای برپا شد فرج با گروه و خوشحالی نارنج تلا رو برای دختر پادشاه برد دختر گفت خب من اول باید این نارنج رو بشکافم اگه از اون دختری صحیح و سالم بیرون اومد اون وقت من با تو ازدواج شکرم و در غیر این صورت به این ازدواج تن نمیدم بعد با چاغویی که تو دستش بود به آرومی سر نارنج تلا رو برید فرج یک کمی نگران و مسترب بود و به دستان شهزاد خانم که در حال شکافتن نارنج بود خیره شده بود وقتی شاهزاده سر نارنج تلا رو برید یهو دختر مثل دختر پادشاه بلخ یا همون شاهزاده خانم از داخل نارنج بیرون اومد فرج با تعجب و ناباوری نگاهی به شاهزاده خانم و نگاهی هم به دختر نارنج تلا انداخت و با تعجب گفت اه خدای من چی میبینم شما شما چقدر شبیه هم هستیم مثل یه سیبی که از وسط اون نیست کرده باشن. در این موقع پادشاه وارد اتاق شاهزاده خانم شد. ولی از تعجب سر جاش خشکش زد. اونم نمیتونست بفهمه کدوم دخترشه و کدوم دختر نارنجتلا و فریاد زد یکی بیاد دخترم رو به من نشون بده. این دختر منه؟ نه نه نه. اون دخترمه. نه نه. به دادم برسین خلاصه پادشاه اونقدر فریاد زد تا درباریان از گوشو کنار اومدن اونا هم از دیدن این دو دختر که قابل تشخیص از هم دیگه نبودن در حیرت موندن و هرچه تلاش کردن تا بتونن این دوتا رو از هم تمیز بدن نتونستن که نتونستن دست آخر در ویشی از راه رسید و گفت گره این راز توی یه دیار دیگه است در اون دیار پادشاهی حکومت میکنه که پسری به نام فیروز داره به جزون هیچ کس نمی این دو دختر رو از هم تشخیص بده پادشاه فریاد زد آیا کسی می تونه گره این راز رو باز کنه؟ از هیچ کس صدایی بلند نشد در این موقع فرج گفت پادشاه به سر آمد من به اون دیار میرم و این گره رو باز میکنم چند لحظه بعد فرج با روبانه خودش رو بست و در پی فیروس برافتاد ساعت ها رفت و رفت تا به دره ای رسید در این موقع صدای غرش شیری به گوش رسید و بعد نالی آه کمک کمک کمک فرج لحظه با تردید به اطراف نگاه انداخت و جلوتر رفت دید که درختی در شکم شیری فرو رفته و از پشت کمرش بیرون زده شیر تا چشش به فرج افتاد با آه و ناله گفت آخی جوون من گرفتار رو نجات بده خواهش میکنم آ دارم از درد میمیرم کمکم کن فرج نمیدونست شهار کنه شیر با آه و ناله ادامه داد آه اگه منو از این گرفتاری خلاص کنی هر ای داشته باشی برات برآورده میکنم وای وای کمرم آخ دلم آه. و فرج که دل در گروه شاهزاده خانون داشت فورا دست به کار شد و با بریدن درخت شیر رو از اون گرفتاری نجات داد شیر که کمی آرومتر شده بود گفت ای hey, جوان ازت ممنونم حالا هر خواسته ای داری بگو تا اونو برات برآورده کنم فرج گفت ای شیر من من دختر پادشاه برخ رو برای همسری خودم انتخاب کردم شرط اول اون آوردن نارنج تلاز شهر ها بود که من آوردم اما مشکلی پیش اومد شیر پرسید چه مشکلی؟ فرد جواب داد مشکل اینه که وقتی دختر پادشاه بلخ سر نارنج رو برید از داخل اون دختری بیرون اومد به شکل خود دختر پادشاه بلخ و حالا هیچ کس نمیتونه اونا را از هم تشخیص بده شیر پرسید حالا از دست من چه کاری ساخته است؟ فرج گفت اگه اگه تو با من بیایی و بتونی اون دوتا رو ازم تشکیز بدی شاید مشکل حل بشه و من بتونم با دختر پادشاه بلخ ازدواج کنم شیر سری تکنداد و گفت باشه حرفی نیست من مدیون تو هستم بنابراین هر کاری به یه انجام میدم حالا پشت من سوار شو و به طرف سرزمین بلخ بریم فرج رفتند و رفتند تا به سرزمین بلخ رسیدند و یک راست رفتند قصر پادشاه. پادشاه از دیدن فرج خوشحال شد و پرسید خیلی خوشحالم آیا تونستی گره این راز رو باز کنی؟ فیروز رو پیدا کردی؟ و وقتی چش پادشا به شیر همراه فرج افتاد وحشت زده فریاد زد شیر؟ شیر؟ این شیر اینجا چه میکنه؟ فرج پادشاه رو به سکوت و آرامش دعوت کرد و گفت قربان نگران نباشین اون شیر بیازاریه و برای کمک به همراه من اومده حالا اجازه بدین ما کارمون رو شروع کنیم و بعد رفتن سراغ شاهزاد خانوم و دختر نارنج تلا شیر که وارد اتاق دختر شد اون از وحشت از حال رفتند. و شیر کف پای هر دو دختر رو بو کشید و دست دختر نارنج رو به دندون گرفت و به گوشه برد بعد به فرج گفت این دختر نارنج تلاست فرج با خوشحالی به طرف دختر پادشاه بلق که همچنان بیهوش بود رفت اما شیر بون گفت من دختر کاری نداشته باش فرج با تعجب پرسید چرا اون همسر آینده منه؟ و باید اونو به خوش بیارم تا هرچی زودتر برای مراسم عروسی آماده بشه شیر گفت بهتر از ازدواج با اون منصرف بشی فرج با ناباوری پرسید منصرف بشم آخه چرا شیر گفت برای اینکه اگه با دختر پادشاه بلخ کنی کنی. تو زندگی دوچار قما اندو میشی؟ فرج پوزخندی زده گفت <تصفح> دوچار و اندو؟ ولی من با اون خوشبختترین مرد این سرزمین میشم چی میگی؟ شیر سری به تصفت کنده و گفت دوست من اگه با دختر بادشاه ازدواج کنی اون مرگی به خونه میاره که از تو خون اون غذایی برات درست میکنه که تو با خوردن اون هر سال سه بار به دل درد شدیدی دچار میشی. و گنجینه پادشاهی رو هم خرج کنی نه نه نه از این درد خلاصی پیدا نمی کنی فرج که از شنیدن این حرف به تردید افتاده بود پرسید عجب واقعا اینطوره؟ شیر جواب داد البته دوست من فرج فکر فرو رفت شیر ادامه داد اما اگه با دختر نارنج تلا ازدواج کنی اون تو رو به آسمون و دریا میبره به باقای میبره که تا به حال مثل اون هیچ ندیدی و نخواهی دید بعد از صحبت های شیر فرج تصمیم گرفت که با دختر نارنج تلا ازدواج کنه و این کار رو هم کرد و بعد از یک سال صاحب یه پسر به نام کاکلزری و یه دختر به نام دندون مروارید شده این خاهر برادر یعنی کاکلزری و دندون مروارید وقتی بزرگ شدن هر کدومشون یه هنری داشتن که از وصف و بیان به دور بود کاکلزری با هر انگوشش کاری انجام میداد. از یه انگوشش میخواست که لشکری فراهم کنه و از انگوش دیگه میخواست تا لشکر رو نظم بده و به دیگری گفت که لشکریان رو آماده حرکت کنه این هنر کاکلزری بود اما هنر دندون مورواریدم این بود که میتونست هر آن به شکل پرندهی در بیاد و هر وقت پدرش یعنی فرج افثانهی ما را گرفتاری بشه اونو نجات بده برحال روزگار میگذشت تا اینکه یه روزی فرج راهی سفر شد در میان راه به گروهی از دشمنان برخورد کرد و بین اونا جنگ سختی در گرفت دشمنان فرج رو گرفتن و در سیاه چالی انداختن فرج که از گیسوان دخترش دندون مرواری چند تار به همراه داشت فورا اونو آتیش زد و در یک چشم هم زدن دختر از گرفتاری پدرش آگاه شد و به طرف همون چاهی که پدرش در اون زندانی شده بود پرواز کرد و پدرش رو نجات داد اونا با هم خونه بریشتن اما اما وقتی به خونه رسیدن دیدن عجب کاکل زری سخت بیمار شده دندون مروارید بلا فاصله خودش رو به شکل کبوتری در آورد و به آسمون پرواز کرد گشت و گشت تا روی زمین پیرزنی زنی رو دید که تنها نشسته بود دندون مروارید اون گفت ای مادرچان باید بیا یک برادرم رو نجات بدی باید رو درمون کنی پیرزن قبول کرد و همراه دندون مروارید راه افتاد اونا وقتی به خونه رسیدن کاکلزری هنوز تو بستر بیماری بود. پیرزن با دیدن اون گفت علاج درد این پسر خوردن گوشت ماهی قرمزیه که توی چشم ساری دوره. فرج به امراه دندون مروارید برای یافتن ماهی قرمز برای اونا در بین راه به پیرزن دیگه برخورد کردن و از اون نشونی چشم سار رو پرسیدن. پیرزن گفت از این کوه که بگذرین به چشم سار دلخواهیتون میرسیم اما یادتون باشه اونجا سرزمین دیوهاست و برای رسیدن به چشمه راهی جز جنگیدن با دیوا ندارین اما فرج و دندون مرواری برای درمون کاکرزری حاضر بودن دست به هر کاری بزنن حتی جنگ با دیوا. فارا جدند و مورورید کوه رو گرفتن از اون بعد اون طرف کوه سرازی شدن و خودشون رو در سرزمین دیوها دیدن چند لحظه بعد اونها در محاصرگ دیوها بودن فرج چند تا دیو رو کشت و دند مروارید هم چند تا رو و آخر سر بقیه دیوها از ترس تسلیم شدن فرج و دند مروارید به چشم سار رفتن ماهی قرمز رو گرفتن و به خونه برگشتن. مادرشون یعنی دختر نارنش تلا هم فورا گوشت ماهی قرمز رو توی روغن انداخت و بعد اونو به کاکرزری داد حال کاکرزری خوب خوب خوب شد و روزگار رو همه به خیر خوشی گذروند افسانه دختر نارنج رو از گنجینه ادبیات شفاهی مردمان خطه خراسان براتون نقل کردم برگرفت از کتاب سمندر چلگیس گردآوری محسن میهندوست افسانهها ها عجیب و غریب اما زیبا و شنیدنین اونها قم رو از یاد انسان میبرن و انسان با شنیدن افسانهها ها گویی غم و اندوه و رنجهاش رو از یاد میبره افسانهها ها در واقع آدم رو وادار میکنن تا برای لحظاتی خود و دنیای اطرافشون رو فراموش کنند افسانهها ها مرهم دردهای انسان ها هستند و برای همین هم مردم اونا رو به وجود آوردند و خلق کردند هزار افثان کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت پور ویراستار سولیلا کریمی اجرا مهران دوستی صدابردار علیه آزادگان کهی کننده زهرا عبدالله آزاده تا افسانه دیگر بدرو